نوار شماره 537F قسمت ششم کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمدعلی شیرازی صفحه 156 را با سرعت عدا کرد و مثل این بود که میخواهد از بار سنگینی به هر قیمتی که شده است شانه خالی کند آنگاه در تعقیب کلام خود گفت ولی من به او گفتم که نمی توانم با او ملاقات کنم حقیقت از شا بخواهید مایل نیستم او را ببینم کارنین نزدیک شده دست نرم و کوچک آن را در دست خشن و بزرگ خود گرفت آنها هم ممانعت نکرد و دست خود را همچنان در دست کارنین باقی گذاشت. کارنین با اضطراب گفت من از تو بسیار متشکرم و آنگاه از ادامه کلام خودداری نموده با نگرانی به بتسی نگاه کرد و واضح بود که وجود بتسی را مانع ادامه کلام خود میدید. بتسی متوجه سکوت کارنین شده از جای برخاست و گفت آنا من اکنون می روم امیدوارم به زودی به دیدنت بیایم. آنگاه آننا را بوسیده از اتاق خارج شد کارنین دنبال بتسی به اتاق لباس پوشی رفت در آنجا بتسی استاد و گفت آقای کارنین من می که شما مرد قلب و بزرگواری هستید من شما را محترم و آننا را دوست می خواهش خواهیش می کنم. من بشنوید و بگذارید فرونسکی که جوان نجیبی است و میخواهد به تاشکند مسافرت کند برای خداحافظی به دیدن آننا بیاید کارنین با سردی پاسخ داد شاستاد خانم من از نصیحت شما کمال تشکر رو دارم ولی زوجم خودش میداند که باید با چه کسی ملاقات کند و از دیدن چه کسی امتناع برسد وقتی کارنین به نزد همسر خود برگشت دید که در جای خود نشفته و قطرات عشق از چشمانش سرازیر می باشد با لطف و مهربانی به وی گفت باز هم از تشکر می کنم که این گونه به من اطمینان و اعتماد پیدا کرده چون این تصمیمی اتخاذ نمی دهی. من هم عقیده ی تو را دارم مادامی که به خیال دارد مسافرت کند هیچ ضرورت ندارد به اینجا بیاید و آنها با سرعت و کم کلام او را قطع و گفت من هم که همین را گفتم. آنگاه در پیش خود گفت آری هیچ ضرورتی ندارد. مردی که زنی را دوست می دارد و نزدیک بود به خاطر به کشی کند به دیدن او بیاید. زنی که نمی تواند بدون آن مرد زندگی کند. آری هیچ ضرورتی ندارد. آنگاه سر به زیر کنده و چشمانش به دست خشه نکنیم که رکهای ای داشت افتاد و می گفت خوب است رشته صحبت را مرد گفت من دارای آزادی کامل نبودم و خیلی خوشبختی که میبینم آنها که از کند حرف دادن شوهر به سطوح آمده بود جمله وی را بدین گونه تمام کرده عقیده من با عقیده تو یکیست مرد گفت ولی شایسته نبود شهسته خانم بیتسی در مسائل خانوادگی ما این گونه دخالت کنند به خصوص که آنا با کمی خوشونت کلام او را رد کرد گفت من آن را درباره وی میگویند باور نمی‌کنم او نسبت به من زنی مهربان و وفاداری است کارنین که خوشونت به وحسلگی همسر خود را آن دید پیش خود گفت نه نه این غیر قابل تحمل است حاصل نهم شادۀ خانم بیتسی همین که از خانه کارنین خارج شد ناگه به ابلونسکی برخورد بلسکی مدت دو روز بود که به پترزبورگ آمده بود. وی به مجرد اینکه به را دید چنین این اظهار داشت. آه خانم شما هستید چقدر از ملاقات شما خوشبختم برای شرفیابی به خانه شما رفتم ولی زن گفت: در هر حال اکنون که دیگر را دیدیم. بللووسکی گفت: صبر کنید صبر کنید و بگذارید دست شما را پیش از که آن را در دستگشت پنهان کنید ببوسم؟ آنگاه دست شایستاد خانم بیتسی را بوسیده و در تقیب سخنان خود گفت کی می توانم شما را ملاقات کنم؟ شایستاد خانم از روی شوخی گفت تو شایسته آن نیستی؟ ابلونفی گفت من شایسته تر از آنم که شما تصورش را بکنید من اکنون نه فقط اختلافات خانوادگی را برطرف می کنم بلکه اختلافات دیگران را نیز از نیان می برم آنگاه چشمکی زد بتی دریافت که مقصود او فرونسکی با کارنین و زوجش آنا میباشد. بتی گفت: آ نام این و شوهر بر سر زبانها افتاده است. آنا چون گلی که در دست نادانی باشد پشمرده می‌کردند. کارنین نمیداند که آنا آن زنانی نیست که بشود با اواتپ او بازی کرد. کارنین باید یکی از دو کار را بکند یا طوری با آنا رفتار نماید که او را خود برای خود حفظ کند یا اینکه او را طلاق بدهند اما این وضع اگر ادامه پیدا کند آننا دیر یا زود خواهد شد ابلانسکی آهی گشت و گفت آره باید راه علاجی پیدا کرد من هم برای همین مقصود آمدم انگاه ابلانسکی خدا واسه به سوی خوابگاه آنا رفت در حالی که از خوشحالی می خندید از خواهر خود پرسید که صبح را چگونه گزرانده است وی ای با ناامیدی پاسخ داد خیلی بد صبح و شب دیروز و امروز گذشته با آینده به یک منوال است او نگاهی نگاهر بر خواهر خود افکند و گفت این قطب خود را تسلیم یس و ناامیدی مکن با شوهر خود آنها کلام او را قطع کرد و گفت میگویم که بعضی از زنان مردان به و خشن را دوست میدارند راستی من خیلی بدبخت و بیچاره هستم من میدانم که شوهرم مرد بزرگوار و شراف نیست ولی من چه کنم که از اون متنفرم من نمی توانم وی به سر برم اوبلانسکی گفت مگر تو خدای نخواست مریض هستی و یا اعصابت درست کار نمی کند زن گفت من مریض نیستم ولی که بدبخت و و جز مرگ هیچ چیزی مرا نجات نمی دهد گفت بده. اشتباه این بود که تو با مردی بیس سال بزرگتر از خود بدونن که عشقی به او داشته باشی ازدواج کرده ای و نتیجه این شد که بدبختانه عاشق مرد جوانی شدی شوهرت از این قضیه با خبر شد ولی بزرگواری کرد که تو را بخشید آیا چنین نیست؟ اکنون بگذار از تو بپرسم آیا پس از این میتوانی با شوهر خود زندگی کنی؟ و آیا؟ او حاضر می شود با تو زندگانی نمایت؟ آنها گفت نمیدانم، نمیدانم. نمی, دانم، نمی دانم. گفت ولی تو گفتی که از اون متنفری و نمی توانی با او زندگی کنی آنها گفت نه من چون نگفتم و اگر هم گفتم کلام خود را مسترد میدارم من چیزی نمی دانم، من چیزی نمیفهمم. فهمم گفت بسیار خوب بگذار. آنا گفت تو نمیتوانی توانی بفهمی. من حس کنم که در ترسگاهی سر نگون شده و به هیچ وجه نمیتوانم خود نجات دهم. اوبلانسکی گفت ترس نداشته باش. پیش از آن که به تایی چاه سر نگون شوی تو را بالا میکشیم. خب دادی ببینم چرا شما این حالت ناگوار را به وسیله طلاق نمی نمیدهی؟ آنا سری جنبانده پاسخی نداد. اوبلانسکی دانست که چون وی از یک ممکن، و سعادت موقتی صحبت میکند، پاسخ نمیدهد. دهند. گفت من دلم به حال تو می سوزد. خیلی مسرور و خوشبخت می شدم که اگر بتوانم این قضیه بغرنج را حل کنم، من اکنون به سراغ شوهرتکان نمی رویم. آنگاه از جای آن آننا با چشمان درخشندهی به او نگریست ولی چیزی نگفت. فصل دهان کارنین پس از آن که جویای حال زوجه خیش گردید به دفتر کار خود رفت. ابلانسکی با متانت و عظم راسخی داخل دفتر کار کارنین شد. همین که کارنین را دید مضطرب شده گفت امیدوارم که شما را نگران نکرده باشم. کارنین با لحنی که خستگی او را می‌رساند پاسخ داد نه نه بفرمایید بنشینید ابلانسکی نشست و گفت شما به خوبی می‌دانید که من تا چند روز خواهرم را دوست می‌دارم و شما را هم محترم می‌شمارم. در وقت ادای این کلمات، چهره یوبلوفسکی سرخ شد. کارنین پاسخی نداد و او باز گفت: من می‌خواهم درباره شما و خواهرم صحبت کنم. کارنین تبسم اندوهناکی نمود و نگاه طولانی بر اولوفسکی افتاند. آنگاه از روی میز ای را که می‌نوشت برداشت و به اولوفسکی داد و گفت: کمان می کنم که شما می خواهید این موضوع با من صحبت کنید. آنها از من متنصر و بیزار است. خوش ندارد که من در کنار او باشم و با او صحبت کنم. از این رو مجبور شدم نامهای برایش بنویسم. امناسکی متعجب شد. نامه را گرفت و این سطور را خواند. من حس کردم که تو از من بیزاری. گرچه بر من گران آمد که این امر را بدانم. ولی چه باید کرد؟ این حقیقتی است که نمی‌توان انکار نمید. من تو را سرزنش و ملامت نمی‌کنم. خدا را شاهد می‌گیرم که همین که تو را در بستر ناخوشی یافتم، گذشته را فراموش کردی، تو را بخشیدم تا زندگی نوینی را از سرگیری. با وجود این، از کرده خود تشیمان نیستم، زیرا من مقصودی جز آسایش و خوشبختی تو ندارم. ولی چون می‌بینم که را خواستار بودم، به دست نیاوردم. بیا و به من بگو آیا چه چی چیزی سعادت حقیقی و آرامش خاطر تو را فراهم سازد؟ به خدا هرچه بخواهی و از دستم براید برایت انجام خواهم داد و سرنوشت خود را نیز تحت اراده و انساس تو قرار خواهم داد ابلافگی با تعجب آن نامه را خواند و به كارنین مضطرب داشت سپس نگاهی طولانی او افکند و ندانست چه بگوید سکوت طولانی و دردناکی بین آن دو حکم فرما گردید کرمین محرس سکوت را شکسته چهره خود را برگرداند و گفت من این چیزها را می‌خواستم به او بگویم ابلانسکی با صدایی که از بغض و گریه گرفته شده بود گفت آخ اکنون دانستم که شما شخص بزرگواری هستید کرمین گفت من باید بدانم که خواهش ها و رقبت وی چیست ابلانسکی گفت چون این به نظر می‌رسد که او در چه موقعیتی باشد او کاملا خرد شده است. بزرگواری و گذشت شما کاملا او را از پای در و زبون نموده است. حتما وقتی این نامه را بخواند نمیتواند چیزی بگوید و از روی عجز و ناچاری فقط سر خود را به زیر خواهد هفت کرد کانینگ گفت: آری، ولی در این حالت چگونه توان تفاهم حاصل کرد؟ چگونه امیال و خواهش‌های وی را بدانم؟ ابلانسکی گفت اگر به من اجازه بدهی که عقیده خود را بیان کنم میگویم که قضیه بسته به اراده شماست و تنها شما می به این وضع بغرنج و حالت ناگوبار خاتمه دهید کارنین گفت پس شما عقیده دارید که باید قضیه را خاتمه داد ولی چگونه من که راهی به نظرم نمی رسم گفت ولی هر مشکل راه حلی دارد شما یک مرتبه تصمیم گرفتید که او را طلاق بدهید و اگر اکنون حس می کنید که ممکن نیست سعادت آن تحقق حاصل کند، جز با کارنین کلام او را قطع کرد و گفت، هر که سعادت را در یک چیز میداند و مفهوم خاصی برای آن قائل است. او برای رهایی از این وضع ناگوار هر پیشنهادی به نماید و قول میدهم که من آن را قبول خواهم کرد. ابلونسکی در حالی که تبسام تلخی برلوانش نقش بسته بود گفت گمان میکنم راه حلی پیدا کرده باشم و آن لزوم تصدیه این مسئله پیچیده و بغرنج است. این تصدیه جز با سراغ و جدایی شما دو نفر صورت نخواهد گرفت. کرنین ابرو در هم کشید و گفت آیا از طلاق می باشد؟ او گفت آری به نظر من طلاق بهترین راه حلی برای این قضیه بغرنج است. کارنین آهی کشید و چشمان خود را بست. ابلانسکی گفت مسئله دیگری که باید در آن فکر و اندیشه کرد این است که آیا یکی از شما خیال دارد دو مرتبه ازدواج کند یا خیر؟ و اگر جواب منفی باشد، طلاق آسانترین کارخواه خواهد بود. کارنین زیر لب کلمات نامفهومی را عداله نمود و پاسخی نداد. کارنین بارها درباره آنچه آنجیگ ابلونسکی چنان سهل و آسانش فرض میکرد اندیشه نموده دید که این نه فقط آسان و سهل نیست بلکه از چندین جهت دشوار و غیر ممکن است. زیراوی برای اینکه که انکارنینه را رسوا و شرافت خود را ننگین نسازد میباید اعتراف به خیانت زناشویی که آن را مرتکب نشده است بنماید، و این اعتراف او را پست و کوچک معرفی خواهد کرد. علاوه بر این به این نمی خود همسر خود آنکارنینا را که دوستش می‌دارد و گناه او را بخشیده است متهم به خیانت کرده نامش را بشتر زبانها بیافت وانگهی اگر طلاق صورت گیرد پسرش چه خواهد شد؟ نه غیر ممکن است او را تحت سرپرستی مادرش بگذارد زیرا متلقش ممکن است برای خود خانواده نوینی غیر شرعی به وجود آورد. که عبدا شایسته نیست پسر یران تربیت شود پس باید تفر را نزد خود نگاه دارد این امر به منظل یک انتقامی خواهد بود و او هم مایل نیست که انتقام بگیرد همچنین باز بیدید که طلاق امری غیر ممکن زیرا طلاق شالوده زندگی آننا را از هم پاشیده و برای همیشه بدبخت و بیچاره اش خواهد ساخت هنوز کلمات شاهزاده بتسی در گوشش تنین انداز بود. ویدید که طلاق معنیش این است که این زن بدبخت از نعمت توبه محروم و از راه راست و فضیلت دور گردد. بنابراین انکارنینای متلقه ی زناکار جز این چاره ای ندارد که رابطه نامشروع خود را با فرونسکی ادامه دهد. تا اینکه پس از چندی فرونسکی او را ترک گوید و به بناچار خیشتن را در آغوش مرد دیگری بیافکند. با اینکه کارنین می میتوانست یک پاسخ کافی و قانع ای بدهد، معهازا سکوت اختیار کرد. ابلونسکی در تعقیب سخنان خود گفت: «اکنون باید بدانم شروط شما برای موافقت بر طلاق چیست؟» کارنین گفت: آننا هیچ چیزی نمیخواهد.» ابلوونسکی گفت در هر حال اعصاب شما خسته شده و خوب بهتر است استراحت کنید اما کارنین به سخنان او گوش نمیداد و پیش خود چنین می‌اندیشید که اگر شخصی سیلی بر گونه راست تو نواخت گونه چپ خود را به او بنمای و اگر شخصی روپوش تو را گرفت پیرهانت را به او بده کارنین گفت آری آری من افتضاح طلاق را قبول می کنم و حاضرم که از پسر خود نیست، صرف نظر نمایم. آنگاه به سوی پنجره رفته و در آنجا ایستاد. حرکتی نکرد و سر خود را هم به راست و چپ برنگرداند. تا ابلونسکی قطرات اشکی که از چشمانش سرازی شده بود نبیند. ولی تلخی و ناگواری زائقی او در این بار با حس دیگری که لذت فداکاری و ایثار نفس باشد آمیخته شده بود. بلونسکی با صدایی که از شدت تأثیر لرزان شده بود گفت کارمین شما مرد بزرگواری هستید و آنکارمینا این کرم و بزرگواری شما را ستایش خواهد نمود. کارمین خواست چیزی بگوید ولی بغض و گریه مانع تکلمه او گردید. ابلونسکی گفت در هر حال من از این مصیبتی که بر شما و آنها وارد آمده است خیلی متاسفم. و ما به هر دو مساعدت نمایم. ابلونسکی با حالت تأثر از اتاق کارنین خارج شد. کارنین گرچه متأثر بود ولی از اینکه مشکلی را حل کرده است راضی بود و آن مسئله این بود که فرق بین من و یک نفر شیمیست این است که یک نفر شیمیست محلولی میسازد که کسی از آن خوشش نمیآید اما من ترکیبی درست کردم و سه نفر را آسوده نمودم. فصل 11 وقتی که فرونسکی نامید گردید و بر اثر اختلال حواس سینه خود را هدف تپانچه خیش قرار داد به نگاه دستش لردید و در سینه زخم خطرناکی برداشت ولیکن نمرد همین که فرونسکی چشمش باز شد و توانست تکلم کند با فاریا زن برادر خود را دید که زخم او را می‌بندد. بندد فرونسکی به او گفت بافاریا، باید به همه بگویی که اصابت گلوله غیر ارادی و بر حسب تصادف بوده است. بافاریا تبسمی نموده او را مطمئن ساخت ولی فرونسکی گفت من نمیخواهم مردم بگویند که این تیراندازی من عمدی بوده است. بافاریا گفت هیچکس این را نخواهد گفت. من امیدوارم دیگر چنین آمدی برای شما روی ندهد. فرونسکی تبسمی نموده و چیزی نگفت. وقتی زخم فرونسکی التیام یافت، فرونسکی متوجه شد که با خون خود نتوانسته است لکه ننگی را که به دامانش نشسته از پاک کند و همچنین نمیتواند به صورت کارنین نگاه نماید زیرا از کرم و بزرگواری او احساس خاری و مذلت خواهد کرد با همه یک کوشش و جدیت خود نتوانست حس یف و نامیدی را از خاطر خود دور سازد زیرا احساس کرد که بیاندازه آننا را دوست میدارد آنگاه چون این پنداشت که آیا با خودکشی خیانتی که به شوهر آننا کرده است کارسته می شود و آیا او می‌باید باید توبه آننا را محترم شمرده باعث جدایی آننا و شوهرش نشود؟ ولی در عین حال نمی توانست عشق آننا را از قلب خود بیرون نموده و خاطرات شیرین خیش را فراموش کند. اتفاقا معمولیت مهمی را در تاشکند، به وی پیشنهاد نمودند و وی نخست بدون تردید قبول کرد ولی همین که موعد رفتن فرا رسید دوری از آننا را برخون تحمل ناپذیر دانسته و پیش خود چونین گفت ای کاش برای آخرین بار او را می دیدم آری بار دیگر او را می دیدم و سپس میمردم مردم به شاهزاده خانم بسی گفت که میل دارد برای آخرین بار آنای عزیز را ببیند بتسی به نزد آنا رفت ولی پس از مدتی برگشت و جواب منفی آورد. فرانسی گفت باشد اگر من آنا را می دیدم تصمیم متزلزل می شد و رفتن مسافرتم صرف نظر می کردم. ولی روز دیگر بتسی برای او خبر آورد که کارنین حاضر شده است آننا را طلاق بدهد و با این حال او می همیشه آننا را ببیند. فرانسکی بدون درنگ به خانه کارنین رفت و در آنجا یک سر به خوابگاه آنا کارنینا شتافت. فرانسکی دید معشوقه زیبایش منتظر اوست. به زانو درآمد، دست نرم و سفیدش را بوسید و او را در آغوش کشید. آنا در حالتی که دستهای فرانسکی را گرفته و بر سینه خود فشار می‌آورد، با صدای لرزانی گفت: آری، تو مرا اسیر عشق خود نمودی و من مال تو هستم. فرانسکی اظهار داشت آیا راستی ما بدون مانع با هم زندگی خواهیم نمود و زن و شوهر خواهیم شد؟ من که باور نمی کنم. ابلونسکی گفت که کارمین گرچه به همه چیز موافقت می کند ولی من نمی به این کرم و بزرگواری اوتان درده هم برزین دو مایل به طلاق نیستم. به هیچ چیزی هم اهمیت نمی دهم. ولی نمیدانم دهم پسرم سیره چه خواهد شد. مرد گفت دم غنیمت هست نگران نباش. ما اکنون خوشبختیم، همین برای من کافی است. آنا گفت، آه پبردگارا چرا من نمردم آنگاه سرش که حسرت از چشمانش سرازیر شد. فرونسگی از رفتن به تاشکند، سر و بعد هم به مناسبت راضی شدن رؤسای مافوق خود به ناچار از خدمت ارتش داد یک هفته بعد آنا شوهر و پسرش را ترک گفته، با محشوب خود فرانسگی به ایتالیا رفت نگفته نماند که آنها نه درخواست طلاق نمود و نه ابراز مخالفت پنجام فصل یک آنها به اتفاق فرانسکی سه ماه تمام شهرهای ایتالیا را از قبیل روم و ناپلو بنیز گردش کرده سرانجام به شهر کوچکی رحل اقامت افکند. آنها در تمام این مدت با معشوق خوش و قررم بود و از گذشته خود یادی نمی کرد تا سعادت فعلی خود را مسموم ننماید زیرا یاد بودهای گذشته او را متبهش و خاطر مسرورش را در این موقع مکدر میساخت. از این رو زندگانی او با کارنین ایام بیماری، استقفار و توبه، ترک خانه و پسرش، همه چون خواب و احلام مخفی به نظرش می آمد و خوشحال بود که خود را با فرونسکی تنها و بدون اقیار می دید. همچنین وی درباره باره بدبختی که برای شوهر خود پدید آورده بود فکر نمیکرد. و اگر اهیانا این فکر به خاطرش می آمد فوری آن را از سر به دور می کرد. آنها وقتی فکر میکرده كه که او سبب بدبختی کارنین شده است بیش خودچونین می گفت. درست است که او از دست من زیان زیادی دیده ولی من هم عزت نفس و فرزند دلبندم را از دست دادم. او درد میکشد من هم باید درد کشیده و کاملا خوشبخت نباشم و نباید طلاق را بخواهم و به گرفتن پسر خود بنمایم تا این خاری و دوری از فرزندم کفاره گناه هم باشد ولی آنکارنینا با یک چنان تصمیم خود دردی نکشید و رنجی نبود چه موقعیت موهل جدید خود را احساس نکرده با دختری ای که به دنیا آورد او را مایه تسلی خود قرار داد. آنا پس از رهایی از مرگ حس کرد که علاقه شدیدی به زنگانی پیدا کرده است. زیرا خود را آزاد و بدون اقیار با آن مردی دید که او را دوست می‌داشت. آنا همه چیز را در فیروسکی زیبا می‌دید و خود را کاملا خوشبخت و سعادتمند یافت. اما فیروسکی با اینکه به آرزوهای خود رسیده بود محازا آن که باید و شاید سعادتمند نبود چه حس میکرد که سعادتی را که به بهای آن همه دردها و خاریها که توقع آن را داشته است به دست نیاورده و این تصورات او را به اشتباهاتی که مانند او اغلب مردم می و گمان میکنند که سعادت در برآوردن آرزوهایشان می باشد آگاه سا. فرنسکی نخست خوشحال بود که از قید و بند ارتش رهایی یافته و بدون مانع از عشق خود برخوردار می باشد ولی کم کم احساس خستگی کرده و خود را به مطالعه و نقاشی سرگرم نمود و چون نقاشی را نیکو می دانست مشغول کشیدن تصویر دختر فرانسوی که آنا او را برای پرستاری فرزند تازهش استخدام کرده بود گردی دختر فرانسوی کمی خوشگل بود و این عمر حیجانی در قلب آنکارنینا پدید آورد این هیجانات و انقلابات روحی در حکم نخستین شرنگی بود که در کام آنان ریخت چیزی نگذشت که فرونسکی از مطالعه و نقاشی هم سیر شده و از زندگی بی سر صدای آن شهر کوچک ایتالیایی خسته گردید آنلا هم از آن زندگی خسته شده و هر دو تصمیم گرفتند به پیترزبورگ مراجعت نماید. فصل دو از وقتی که کارنین به وسیله فررونسکی دانست که از وی میخواهند تا آننا را به حال خود بگذارد، ما تو مبخود گردید و متحیر بود که چه بکند و چاره ای جز این ندید که آینده خود را به دستان کسانی که در کارهای خصوصی او دخالت نمود و شالودی زندگانی او را از هم پاشیده بودند، بسپارد. ولی او وقتی به دشواری‌هایی که پیرامون او را گرفته و سختی‌هایی که در انتظار او بود، پی برد که پرستار پس از رفتن آن کارنینا به نزد او آمده و از وی پرسید که سیرج چه لباسی را باید بپوشد و چه غذایی را باید بخورد. اگر زوج از اعتراف به گناه خیش او را ترک می کرد و فقط احساس درد و علمی مینمود ولی اکنون به بدبختی و درد او چیز دیگری هم افزوده شده و آن احساس ابتلاع دیگری میباشد. باشد. کارنین بیچاره نمی توانست ما بین اغماز او و مهرورزی به نکارنینا محبت به دختری که فرزند او نیست و وضع موهن فعلی خود یک بستگی و مناسباتی ایجاد نماید. با وجود این، کارنین دو روز بعد از رفتن آنا، سعی داشت که خود را آرام و بی نشان بدهد. او می دید که همه یه مردم با نگاه تحقیر به او نگاه می کند و از گوشه و کنار به او کنایه می و نام او و همسرش آنا را به زشتی می برند. کارنین دانست که مردم به او رحم نخواهند کرد و عبدن زرده شفقت نسبت به وی ندارند. کارنین دانست که یگانه وسیله رهایی از مردم این است که درد و خود را از آنها بپوشاند. ولی اکنون پی بود که از ادامه این امر عاجز و زبون است. یأس و ناامیدی وی افسون گردید و دانست که هیچ کس در غم و اندوه وی شریک نیست. کارنین در ایام خوشبختی خود میدید که عشقش نسبت به آنها او را بی نیاز از دوستی با دیگران می نماید.